آنا یک شنبه 18 آگسته 2013 صبح از روی نرده تا جایی که تونستم گوشی رو محکم پرت کردم. افتاد کنار یه پشت خاک فکر کنم صدای تلپ افتادنش رو نزدیک ریل شنیدم هنوز میتونم صداشو بشنوم سلام منم پیغام بگذارین. فکر کنم تا مدتها این صدا رو که تکرار میشه بشنوم وقتی برمیگردم خونه از پله ها اومده پایین بهم نگاه میکنه نگاهش خالی و بدون حالته با چشمای قی گرفته توی کش و قوس بیدار شدن از خواب. چه خبر؟ میگم هیچی. متوجه لرزش صدام میشم. بیرون چیکار میکردی؟ فکر کردم یه صدای شنیدم، یه سر صدای بیدارم کرد، نتونستم دوباره بخوابم. میگه زنگ تلفن بود و چشمشو میماله. دستامو به هم قفل میکنم تا جلوی لرزششون رو بگیرم. چی؟ تلفن؟ چی؟ جوری نگاه میکنه که انگار من مقصرم. تلفن، تلفن زنگ خورد. یکی زنگ زد قطع کرد. نمیدونم، نمیدونم کی بود. میخنده. البته که نمیدونی. روبرایی؟ میاد طرفم و دستاشو میذاره دور کمرم. چه مرموز شدی، یه ذره نگه هم میداره، سرش رو سینمه، میگه باید بیدارم میکردی اگه صدای شنیدی نباید تنهایی بری بیرون، این کار منه، میگم من خوبم، اما باید فکم و فشار بدم تا جلوی به هم خوردن دندونامو بگیرم، میاد نزدیکم، میگه بیا برگردیم تو تحر. یام الان دوست دارم یه قهوه بخورم، سعی میکنم ازش دور شم، نمیذاره برم، دستاشو محکم دورم حلقه کرده، پشت گردنمو گرفته، میگه، بیا، بیا بریم، منم نخوردم.